در کامل الزيارات امام صادق علیه السلام میفرماید به یکی از دوستانشون یا علی اسمش علی بوده دور الحسین ولا تدعه قبر امام حسین زیارت کن رها نکن قبر امام حسینو رو قال قلتو مال من اعطاه من الثواب انگار نچشیده بوده طرف مزه زیارتو یا شاید چشیده بوده چرا تهمت بزنید میخواسته سوابش هم بفهمه دقیق روایتو دقت کنید. مال من اطاهم من سواب صحبت سر چیه؟ زیارت امام حسین سوال چیه؟ سوابش چقدره وقت ببینید امام صادق علیه السلام بحث رو میبره کجا؟ من اطاهماشین کسی پیاده بره حرم امام حسین آقا امام صادق ایشون که نپرسید پیاده برم یا سواره ایشون پرسید سواب زیارت چیه شما چرا پیاده روی صحبت میکنید امام صادق فداد بشم شما الان بفرمایید سواب زیارت چقدر ایشون سوالش این بود بحث شما هم که سر اصل زیارت بود چی شد یاد پیاده روی افتادی لای دورت بگردم قریب مدینه امام صادق که آ مومنین پیاده میلیونی دور حرم حسین جمع بشن اگه پیاده بری دیده یه مشتری گیر آورده می پیاده بری من فدای خاک قدم های شما که این آرزوهای امام صادق و محقق کردید من عطاه و ماشین کتب الله به کل حسنه و مها و سیعه به هر قدمی حسنهای ای براش نوشته میشه سیعی ای ازش برداشته میشه تو برخی روایات دیگه این حسنه رو مصداقش و فرمودن هر قدمی یک حج یک عمره مقبوله یعنی ف... بالاتر از ظرفیت فهم ماست من فدای خاک قدم شما که این آرزوهای امام صادق و محقق کرده